بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما پیرامون پژوهشی در صفات الهی بحث اول صفت اول علم علم یکی از صفات جمال و کمال حضرت حقه در ثبوت این صفت برای خداوند تمام وعکما و تمام متکلمین اسلامی و حتی همه خداپرستان اتفاق نظر دارند در اینکه این صفت وجود دارد اختلافی نیست اما در محدوده علم الهی و چگونگی علم الهی خب آرا و اقوال متفاوتی هست برای رسیدن به این مطلب باید از اینجا شروع بکنیم که اول ببینیم معنای علم چیه وقتی ما میگیم علم داریم یا نداریم یعنی چی چی داریم چه چی چیزی را داریم در کجای خودمان داریم این معنای علم باد معلوم بشه بر اساس یک اعتقاد رائج علم معنایی بدیهی و روشن دارد زیرا هر یک از ما ها را به مصابه یکی از حالات نفسانی در درون خود مییابد هر یک از ما در زندگانی خود بارها و بارها این حالت را تجربه کرده که ابتدا نسبت به مطلبی جاهل و ناگاه بوده و سپس حالتی در وی پدید آمده که از آن به آگاهی و علم تعبیر می‌شود حالت نفسانیه و جایگاهش نفس انسانه بعد حالت مثل گرسنگی، احوالات درونی شماست مثل تشنگیه مثل ترسه مثل خشمه کسی نه به یک بچه آموزش بده آ این حالت غرستگیه هر وقت این حالت در خودت ایجاد شد احساس کردی شروع کن به گلی کردن که ما هم متوجه بشیم بالاخره یه چیزی بهت بدیم هر کی از درون خودش به اون حالت میرسه چه حالت خش باشه واکنش متراطه چه شادی باشه واکنشش متراطه بر همه حالت و چه سایر حالات باشه میگن علم یک حالت درونی و نفسانی است یک کشف شما ی اطلبی رو قبلا ازت سوال میکردن میگی نمیدونستم امرو ازت سوال میکنن میگی چی ها میدونم کسی به شما این فهمیدی میدانی و نفهمیدی میفهمی نمیدانی رو یاد نداده اون چیزی که میره اون یادت دادن اون معلومه اما اون حالته اون حالت علمه اون چیزی به شما یاد نداده این رو بهش علم آگاهی آگاهی در ممکنات پس از جهله این ما چون هیچ وقت احساس جهل نمی کنیم هیچگاه هم دنبال آگاهی چون مردم ایران که از ویشیگی هست که همه چیز را می وقتی شما همه چیز را می دیگه احساس سه در واقع زعفی ندارید و پس دنبال علم برای چیزی بدنید همون که می به دستید من دارم همه همون داری من هم دارم البته این نکته را نباید فراموش کرد که علم ما انسان‌ها در اقسام گوناگون خود دارای محدودیت‌ها و و است که نمیتوان آنها را به علم خدا تسری داد. معنای علم را گفتیم چیه اون حالت نفسانیه اما این که نبتیم به خدا نسبت بدیم که چان که علم الهی از تمام این قیود و کاستی ها منزهه چون علم ما محدوده چون خودمون ناقص هستیم چون ابزارمون کامل نیست چون جای ابزارمون در تطبیق تو چارشگال میشه لزوم معلوبه که دست میاره غلطه لزوم معلوبه که پای ورقه مینویسی نمره بهش بله نمیدن دراکتور بهم اون دانش. اون دانش غلط بوده در تطبیق تو اشغال کرد پیدا کردی معلم سوال میکنه و تو رو درست جواب به نمره نمیده دیگه تو حالا که نمیدونم چجوریه ولی اون موقعا نمیدادن نمره الان دیگه ایش که دیگه مردود نمیشه الان دیگه کسی تجدید نمیشه دیگه الان اصلا بچهانی من چیزی بنام تک ماده وجود داره یعنی داشت حالا که جزه مثل دایناسالام مغرز شده زمان درس خوندن عبهتی داشت بخش عمده ای از علم ما از طریق ابزار و آلات درونی و بیرونی می شود. برای مثال ما در ادراک محسوسات از اعضای خودچش، گوش و سایر احواس و گاه نیز ابزار خارجی استفاده می کنیم مثل مثلا تلسکوب مثل مثلا نفس کنیم چیز دیگه ابزار دیگه هستن همچنین اگر نگوییم همه علوم ما دستکم اغلب آنها حادث هستند. اکثر علوم ها ما علم ازلیمون خیلی کمه خیلی کمه حادث هستن یعنی علمی هستن که پس از جهل به دست آمده و از این رو در معرض زوان نابودیه چرا؟ چون علم اصلا ذاتش تدریجیه تدریجم به دست میاد هیچ وقت کسی حرف اول را حرف آخر را اول نمیزن میگه خدا بشر حرف اول رو به تدریج تکاملش میده یه زمان حکیم کسی بود که همه علوم رو میدانست مثلا گفتم فلانی حکیمه یعنی مثلا پزشک بود، فیلسوف بود همه چیز میدونست الان همون آقایلی که همه میگن حکیم بس مثلا مثل ابن سینا الان ابن پزشکیست اصلا یه جایگاهی در دنیا نداره بی برو جایگاهی نداره یک عضو بدن انسان که چشم هستش خودش به ده ها تخصص تقصیص دقسیم شده این کمال و تکامل علم تدریجی بوده روز اول که اون همه پزشکی رو میدونسته ولی الان تدریجی که متقصیصه چی شده؟ که این که متقصیصه این ذات علمه روب زوال و نابودی هم هست یعنی دائما لید معلومات پزشکی چی قارب بکنه تقریب پیدا میکنه میگن مثلا فرض کنی هم میکنم. تقریبا هر چار پنج سال یه بار تمام معلومات شون عوض بشه حالا عدد نگید که وقت نگم آقا نه سر شیش سال به تو بودی سال علاوه بر این مجموعه علوم به مسابقه یک مجموعه ناقص و محدوده پس اولاً درپه جهله درپه عبزاره نقص دارن محدود است با اون که میدانیم در مقایسه با آن چیزی که نمیدانیم بسیار ناشیز جهل ما اما از علم ماست و بزرگتر از علم ماست اما علم الهی از همین نواقص منزهه یعنی علم خداوند در پی جهل نیست پس علم خداوند حادث نیست خدا چیزی جهل ندارد تو به علم پیدا بکنه علم خداوند واسطه استفاده از ابزار نیست علم خداون محدود هم نیست مطلق نامحدوده علم نیست مطلق نامحدود ازلی ابدی، از ابتدا تا انتها انتها که ندارد که به هیچ ابزار و مقدمه و واسطه نیاز ندارد این عبارت که بخوام بگم رو بردن را توضیح دوزش و مستلزم انفعال و تأثیر پذیری ذات اللهی از خارج نیست خداوند ذاتش در پی معلوماتش انفعال نمیپذیرد انفعال یعنی از بگیره یعنی معلومات خداوند موجود به اضافه ای در ذات خداوند نمیشه و همینه این تأثیر این در معنا آگاهیش به یک معنا هستیم دیگه اما اینکه این, این نحوه آگاهی چجوریست با هم متفاوتیم آگاهی این آگاهی هم یه درون نیست در ما انسان ها در خدا که درون و بیرون نداره که خدا مراتب که نداره که مثلا یه ماهیت داشته باشه یه وجود داشته باشه وجودش مثلا فرض بفاهمه نفس داشته باشه عقل داشته باشه قلب داشته باشه روح داشته باشه یه حقیقت وسیته. فرایند علم او با ما متفاوت اصلا علم او فرایندی نیست اینا شما نمی ولی اجبالم میفهمیم که عالم هست می به قدری راجب این علم سوکن اولا بدانید که سنخ علم خداوند با موجودات متفاوته نوع علم خداوند با انسان ها متفاوته این رو در بحثای شناکشناسی هم گفتیم علم به دو بخش علم حضوری و علم حصولی تقسیم می شود حالا این رو ببینید میگه قبلا اشاره کردیم که در یک تقسیم بندی مشهور علم به دو گونه حصولی و حضوری تقسیم می شود و معلوم در علم حضوری خود شیعه است حالان که در علم حصولی معلوم صورت ذهنی شیعه است علم حضوری و علم حصولی گایی و گاد شما خود اون حقیقت در نزدتون حاضره نزدتون یعنی کجاتون حاضره نزد. کجاتون؟ نفستون جور چشتون نه پس دو تا حرفه ها این الان یه دقتی داره وقتی میگیم نزد شما حاصل است در مقابل چشمالتون مرادمون نیست بلکه در عالم درونتون نفستون میگیم درونتون فکر نکنید که مثلا نفس توی بدن انسانه رابطه روح با انسان با جسم انسان بنابر دقیق ترین تعبیری که صدر متعلقین داره رابطه باد با بادبانه نگرفتی باد در همه جاته داره دیگه ولی وقتی شما بادبانه میارید بالا به یک جهت میره این رابطه رابطه تعلقیه و این تعلق وقتی قدشه اون موجود همه چیزیش هست الا درک و شعور و حیاتش یعنی دندون داره چشک داره گوش داره ولی دیگه اون تدبیر وجود نداره اون ادراکه دیگه وجود نداره تعلقیه نه که حلول کرده باشه توی بدن باشه احاته کرده بدن رو ها فردا حضرت عباسی نگید که من در دوره ی هر کسی مثلا یه نوری دارم میبینم این اصلا دیده اون بندی خدا یه من روح رو دارم میبینم هر کی گفت من دارم روحم رو میبینم براش یه حمد بخون حمد خوبه شفا میده یه حمد بخونه خوب آقا من روح رو کجی میبینی برادر من بله با جسمت روح رو نمیبینه اگه بخوای ببینی رو مجرد شو مجرد را ببینی نه که همسرت رو طلاق بدی گاه ها گفت بخوای مجردات رو ببینی گفت مجرد باش رو مجرد شو یعنی از ماده و مادیات جداش و این در عموم مردم اتفاق نمیفته چون آخرین چیزی که خفت انسان رو میگیره خیالات و توهمات چگاه انسان مته خودش را امام زمان می دانند چقدر شع آقای من پایینه قرآن میگه لایم هول مترم میگه من دیدم بعد وقتی ظاهره نگاه میکنم چیزی ظاهر نیست بعد یه خدا و همه اوول کنیم با زیادی یا را همکه چیز رو بخوام توضیح بدیم از اصل بحث میری فقط خواستم بگم که اعاته داره و این اعاته کسی نمیبینه حالا گفت دیدم همون هم دو براش فقط بخونه کسی هست با حفظ اهدرام برای اونطوره آره. خوب هم که بد نیستشیه معلوم در علم حضوری خودشه است از خودشه این نفس حالا که در علم حصولی معلوم صورت ذهنی شعی اصلی تصویرش و شی به واسطه صورتش مورد ادراک قرار میگیرد حالا بخواد مثال بزنه شما هستید یا نیستی نسبت به خودت علم داری یا نداری علم شما نسبت به خود شما از مقوله علم حضوری است چون شما خودتون نزد نفستون حاضرید ولی علم شما به بنده علم حضوری سیال علم حصولی؟ علم حصولی تصویر من در یا خودتیکه ببین حواس جمع باشه من خودم هستم ولی بیرون از فضای ذهن تو شما ارتباطت با من به واسطه ای تصویری است که از من در نفست داری صورت من تصویر من در نفس تو حاضر شده یک تو اون حاضر رو بر من تطویق میکنی دو این میشه علم شما به بنده پس تنها علمی که برای انسان علم حضوری علم انسان است به چی؟ به خودش یک علم انسان است به حالات خودش مثل خشم مثل مثل شما صورت گرستگی توی ذهنتونه یا خود گرستگی بله گرستگی که صورت نداری امر معنویه شما خود خشم درتونه یا صورت خشب درتونه خود خشم علم شما به حالاتتون میشه علم حضوری علم شما به خودتون که میگید من هستم و آقایی که گفت من هستم پس فکر میکنم چون فکر میکنم پس هستم حالا بعدا جوابی بنده خدا رم میدیم که من فکر میکنم پس هستم حرف غلطیه گفتی چرا؟ مم. چون تو بخواه اول خودت اثبات بکنی ما اصلا بخواهیم شما خودت اثبات بکنی میگیم از کجا خودت اثبات میکنی؟ میگیم من فکر میکنم پس هستم پس تو اول خودتو در پیش فرض قبول داری بعد میگی فکر بکنم بعد میگی پس هستم در حالی که در پیش فرض اول میگی چی؟ من یعنی اونو در حالت صبات چیکار کردی؟ قبولش داری درست شو؟ این هم اون جمله ماهاییست که خیلی روش بحثی ها مانوب میدن دکارت. برصفیقه به همین راحتی خیلی حرفاش باطله به با همین راحتی خیلی از به فکرم نداره ولی خب ایرانی ها اصلا خصوصیتشون اینه حاضرن لباس بگیرن مارک ترکی روش بزنن تا بخرن اینه فقر فرهنگی یعنی یکی سی از دوستان ما میگفتش که ما در یه هستیم در ایران خودمونه هم بالا هست. قاعده مثلا من کالای رو که خریدم 66000 تومان بدم 58000 تومان بیشتر بر میخوره. بعد حتما بدم 60000 تومان تا یا میشی پیدا کن. از اینجا بگی تو برو بالا. <تصفيق> این واله بودن و شیده بودن ایرانی ها نسبت به جهان دیگر کشه خلا به جهان آخرت اینقدر واله بودن به جهان دیگر این خیلی چیز قمنگیزیه خیلی قمنگیز آدم ناراحت بشه این برو شخصیت خدای ما بخوام یه درست علم تو رو بگیم ببین به کجاها کار کشته میشه پس شما علمتون به بنده علم حضوری یا حصولی؟ من که جلو چشمتونم چرا حضوری نیستم؟ من که خودم جلو چشمتونم بله؟ اصلا چشم ملاک نیست نفس ملاکه چشم راهی برای رستن به اون نفسه ابزار نفس شما چشم شماست پس من علم, حص... علم شما به من حصولیه تصویریه علم حصیل نیست ولی علمتون به خودتون دیگه خودتون نزد خودتون حاضرید نه این که صورتتون خشمتون نزد خودتون حاضر حالا که در علم حسودین معلوم صورت ذهنیش ذهنی شیع است و شی به واسطه صورتش مورد را قرام گیره علم ما به ذات خیش و نیز علم ما به احوال نفسانی خود مثل ترس، خشم، دوستی و غیره علمی حضوری است و علم ما به محسوسات و معقولات در زمره ادراکه چی آقا؟ حصول است ما انسان ها همین دو زمره علم حضوری رو بیشتر ندهدیم به احوالات خودمون و به ذات خودمون بقیه علومون چه راجع به خدا صحبت بکنیم چه راجع به ذره صحبت بکنیم چه راجع به کهکشان صحبت بکنیم از سرا تا سره یا همه علم چیست؟ از فرش تا عرش همه اش علم اصولیست چون ما واسه مفاهیم داریم در واقع ارتباط برقرار میکنم نه واسه خود حقیقت با توجه به تقسیم بندی فوق میتوانیم توانی تعریف جامعی از علم ارائه بدیم این عالی ترین تعریفی است که برای علمه. علم است که جامع چه لغت جامع رو براش بیان می کنیم برای که هم علم خدا رو شامل بشه هم علم انسان شامل بشه و این حرف دستاورد جدیدی است چون قدیم نمی تونست تو علم تعریف برای هم درم تعریف میکنن و علم رو تعریف میکنم به نحوی که هم در خداوند ست میکنه هم در انسان یک خداعلمش حضوری است فقط و انسان علمش هم حضوری است و هم حصولی مطمئن محدوده و حضوریش خیلی محدوده به تعریف جامع از علم و ادراک که شامل هر دو قسم حضوری و حصولی می گردد ارائه علم ارت است حضور معلوم در نزد عالم این تعریف علمه حالا گاهی خود معلوم نزد ها عالم حاضر است میشه علم گاهی صورت معلوم حاضر است میشه علم چی ها حصولی صورت معلوم یعنی تصویر شما ارتباطت با من به واسطه تصویر منه با همسرت همین با دانشجو همین طور با همه مفاهیم چه معقول باشد چه محسوس باشد واسطه تصویره جامعیت این تعریف از آن روز که در علم حصولی صورت ذهنی شی در نزد عالم حضور دارد و در علم حضوری خودشه و ما هم گفتیم تعریف علم چیه عبارت است حضور معلوم نزد عالم گاهی خودش میشه علم حضوری گاهی صورتش میشه علم لیکن در هر دو صورت معلوم نهوهی از حضور در نزد عالم دارد و بر اساس این حضور عالم دارای نوعی عادت علمی بر معلوم است خب از آنجا که تعریف بالا خالی از قیود مربوط به علوم موجودات امکانی است و هیچگونه شایبه نقص و نقصانی در آن راه ندارد میتوان آن را برای اشاره به علم الهی نیز کار با اشاره فقط بعد اشاره بنابراین وقتی سخن از علم خدا به میان میآید، آید آن است که همه امور و تمام اشیا در نزد خدا چیست؟ عالم محضر حق است این یعنی علم خدا، آتق علمی خدا آلم محضر حق است و اینو حضور میرا که علم خدا به ذات خود و همه موجودات است یعنی علم خدا چه به ذات خودش چه به سایر موجوداتش علم, علم چی ها؟ حضوری فقط علم حضوریه عالم محزره است چرا چون امین موجودات هستی خودشان را از قدرت خدا گرفتن درسته قدرت عین ذات است پس همه موجودات در پره قدرت خدا هستند همین که همه موجودات در پره قدرت خدا هستند یعنی در محضر خدا هم حضور دارند یعنی علم خداوند علم چی جا حضوری. این آسانترین دلیل برای علم چون اصل قدرت خدا بر همه موجودات هست یک علم قدرت عین ذات هست بنابراین شما در محضر حق چی هستید حاضر هستید کی میتونه بگه من از قدرت خدا جدا هستم بنابراین شما تحت علم خداوند هم هستید خودت هستید نه صورته این خیلی عالیه این که ما در اون در واقع اول بحث بیان کردیم که علم خداوند ازلی و ابدی که به هیچ ابزار و مقدمه و ماسته نیاز ندارد و مستلزم انفعال و تأثیر پذیری ذات از خارج نیست اینه یه توضیح بهش بدیم اون توضیح چیه؟ ببینید علم خداوند علم حضوریه به همه حقایق یعنی همه حقایق نزد خداوند چی هستند حاضر هستند. درست شو؟ بنابر این معلوم هیچ گاه در خداوند حلول پیدا اگر حلول پیدا کرد باعث این معنی میشه که خداوند یک تأثیری از اون معلوم بپذیرد یعنی محل چی بشه ان فعال بشه ها. نوار خالی رو دیدید اصلا کاست شما فکر کنم صدتون اکثرا به کاست قد نده ولی خب کنجکاویتون تون چرا قد داده این کاست هیچی توش نیست درسته بعدش وقتی یک صدایی رو روش ضبط میکنه یه چیزی روش چی میشه یک صوتی امواج روی اون یعنی اون نوار تلقین محل پذیرش اون انواجه درسته بی بیدا انفاعات پذیرش حالا خداوند وقتی به بند و شما علم دارد معلوم که در ذات راه حق راه بیدا نمی کند که معلوم در محضر حضرت حق است یعنی در حضور حضرت حق است بنابراین هیچگاه علم خداوند علم انفعالی نمی شود یعنی هیچگاه معلومات در ذات اقدس اله حضور پیدا نمی کنند. پس بنابراین هیچگاه علم خداوند سنقش سنق انفعال نیست پذیرش نداره رو هم رو همدیگه توضیحش دادیم دیگه حالا این مقدمات بود همه تازه بخواهی بیرون سراغ علم خدا یه خود علم خدا سخته یه خود سخته یه خود توجه میخواد. بعد از روشن شدن محنای علم خدا علم خدا چی بود بر تعریفش. حضور معلوم نزده آله. که گفتیم سندخ علم خداوند به تمام موجودان از سندخ علم حضوریه حالا تو بعضایش ناشناسی با گفته بودی در اونجا که علم حضوری مزیتش بر علم حصولی چیه؟ اونو اونجا رو جوبه کل ستا که گفته بودیم اون تا ویژگی مهمترین دستاورده یعنی در واقع نشون بدید که علم حضوری چرا من مهمه علم حضوری درش اشتباه وجود نداره شما این خود تو با کس دیگه اشتباه نمیگیدیم اما برادر دو قلوتو ممکن است که با یک قول دیگه اشتگاه بکنید اشتباه بگیرید توجه هم بگیدیم چرا؟ چون علم شما به خودت علم حضوری است ولی علم شما به برادران دو علم چیه؟ حضوریه در علم حضوری خطا راه داره و در علم حضوری خطا راه نداره این مهمترین ویژگی علم حضوریه که خدا هیچ وقت اشتباه میکنه. خدا هیچگاه اشتباه نمی چون علمش به همه حقایق علم از علم حضوری خطاوردار نیست خطاوردار پس از روشن شدن معنای علم خدا اینک نوبت آن است که مروری به اقسام یا مراتب علم خدا داشته باش میگه علم خدا مراتب داره آره قطعا داره که قومت رکر می که بیماری که نداری میگه خدا مراتب داره یا نداره داره همه مراتبشو گوش کن. گاهی علم صفت ذات خدا میشه گاهی علم صفت فعل خدا میشه به همین که صفت ذات میشه دو صفت فعل سال مراتب میشه به همین سادگی حالا این توضیح داره توضیحشو گوش کنیم علم الهی در آغاز علم الهی را در آغاز توان به دو نوع تقسیم کرد علم به ذات و علم به غیر علم به خودش و علم به غیر خودش مقصود از قسم اول علم خدا به ذات خیش است و مقصود از قسم دوم علم خدا به سایر موجودات است از آنجا که سایر موجودات مخلوق خداوندند و حق تعالی آنها را ایجاد کرده، می توان این قسم اخیر را به دو نوع تقسیم کرد. علم خداوند به موجودات قبل از اینکه آنها را خلق کند، علم خداوند به موجودات بعد از اینکه آنها را خلق کرده. قبل از اینکه من و شما را خلق کند، علمش به بنده و شما بوده، بعد از اینکه ما را خلق کرده، علمش به بنده و شما هست این میشه چند مرتبه علم؟ دو مرتبه که از تقسیمات علم خداوند به چیه؟ به خود هست یا به غیر؟ به غیر یه مرتبه علم خداوند به ذات اقدس خودش هست پس خداوند سه مرتبه علم داره مراتب علم خداوند ستاست حالا چرا این تقسیم اصلا درست شد؟ به خاطر اینکه گاهی علم صفت ذات خدا قرار میگیرد گاهی علم صفت چی؟ فعل خدا قرار میگیرن و ذات و فعلم تو تو های خداشناسی شناسی چیکار کردین مطرح کردین به طور مصطفا بعد اونجا خب حالا برای که اینان رو متوجه بشین بریم سراغ قرآن کریم ببین قرآن کریم باشی به علم خدا چی میگه و بعد تحلیلش کن تا اینجا که انشالله به دست انداس بلن نیفتادیم انشاءالله همه رو متوجه شدیم علشان. مطالبش تقریبا سخته ولی در این حال انقدر شما ها ذهنتون ممارست کرده با این سختی ها که به نظرم میاد که متوجه میشید به نظرم نه؟ میاد نمیدون اگه بخوام امتحان بگیریم بعد معلوم میشه که ار چند نفر آمدن معلوم که فهم نه البته خیار تو باشه من هیچوقع امتحان نمیگیرم امتحانتونو خدا میگیره چون من یا امتحان میگیرم تو رو دروسه قرار میگیرم بیست بیدم که محاله یا هر چی که میشید دیگه هر چی که میش حالا هر نمرهی که گرفتی ولی رو خدا بااجبا کنه اونو بااجبا کنه این زمینش برای توفیق اون برای توفیق اون خب ما وقتی به قرآن کریم رجوع بکنیم آیاتی رو پیدا میکنیم درباره باره این که رو که خداوند انجام میداد و اون رو که در خارج چه بیواسطه و چه باواسطه ایجاد میکند از روی علم است و ناغانی هست قدوم آیه سوله که ملک آیه چهارده ارا یعلم و من خلقه اونی که خرق کرده نمیدونه چی خواهی کرده؟ در حالی که و هوه لطیف الخبیر او بسیار باریک بین و آگاهه او نمیدونه تو میدونی؟ اینجا خداوند که در واقع خالق موجودات بزرگ فراوان و بی شما سه سفر آسمان ها بزرگ فراوان یعنی یکی نیست است همون آسمان هفته است و بی لا تو عد لا تو قابل احسان است مخلوقات خدا و خدایی که موجودات بزرگ فراوان و بی شما را آفریده آثار حکمت الهی درش به وضوح پیداست ندانسته خلق کرده علای یعلم این. استفام استفام انکاری زدی شیشر شکستی بعد طرفم دیده تو شکستی تو شیشر نشکستی یعنی که چرا تو شکستی استفام استفام انکاری جوابش منفیه نفت که در نفتیش چه وقت الان من خلق اون که خلق کرده نمیدونه چرا میدونه همه یه در واقع اونجرا که انجام داده است از روی علم و آقاهی و دانش بودت رو باید بدونیم علم و آقای و دانش خداوند منشه خلقت نشده ها. یعنی ببینید ما وقتی میخوایم افعال خودمون رو تحلیل بکنیم بعد او کاری که میخواییم انجام بدیم و باید تصور کنیم مثلا پشت بریم درست فلانی این تصور پنج چرا این تصور از کجا حاصل شده؟ قب پیامکش اومده بعد وقتی در آل... تصور از مقوله چیه؟ از مقوله علم تصور کردی؟ از مقوله علم مبادیه افعال انسان علم نیست بعد با خودت میگی برین درس فلانی یه چیزی میشی تصور فایدر هم میکنه بیرین بالاخره تو یه جلسات بخوام صحبت بکنیم ما یه سرگردن هر دیگران فای... بالا این حداقل اقل فایدهش که به علم کار بکنید تفاخر کنید به دیگران ما میدونیم شما نمیدونید تو میدونیم مثلا علم حضوری یعنی چی نه. برو وقتی نمیدونی که اصلا به ما حرف نزن او بخوامید فهمید علم حضوری چیه بیا پیش شما این تفاخره دیگه درسته؟ و شما با علم دلت می‌گیرین که تفاخر کنین علای اصو گد الله اصلا نه پد علم به تفاخر علم شیطان است ولو قرآن باشه بعد فایدهش رو تصور که اگه ما بدیم درس فلان خب به مبدع خیلی چیزا یاد نمی‌گیریم و این لازمه این نمیشه تصور دوم بعد اون فایده رو تصدیق می کنید که این باید اتفاق بیفته. پس تصور اصل مطلب تصور فایده مطلب تصدیق به فایده تصدیق به فایده یعنی که آره این خصوصیت را دارد اونش تصدیق حکم میکنه نفس شما این سه موادی در واقع چی هستش؟ علمیه وقتی شما تصدیق به فایده کردید اون عمل برای شما برای تحقق خارجی در حد مشیت میرسه یعنی شما یا شواش میخواهید بخواهید که این اتفاق میفته این مشیت اوش پیدا میکنه میشه اراده این اراده تحقق خارجی پیدا میکنه میشه فعل شما میشه فعل شما حالا اگر اون تصدیقه به فایده شما چمرنگ بود والا یاد گرفتین گرفت چی میشه برای شما هیچگاه مشیت پیدا؟ نمیشه. وقتی مشیت پیدا نشد اراده نمیشه وقتی اراده نشد بله تحقق خارجی پیدا نمیکنه. پس برای که شما به مشیت برسید، به خواسته برسید که او رو بهش رنگ و بوی خارجی بدهید باید سه مردبه علمی رو پشت سر بذارید تصورشه، تصور فایدهشه، تصدیق فایدهشه درسته؟ این تحلیل یک فعل خارجی در انسانه فعل خارجی یعنی فعلی که از انسان صادر می شود. نفس فعلی که برای انسان واقع می شود فعلی که از انسان صادر میشه این مراحل پنج قاله رو پشت سر میذاره البته شما در تصوراتتون قطعا تصور و ارزیابی زمان و مکان هم میکنید حالا ما میخوایم بریم درس فعلی خب دیروز که ولن نمیشه بیه که فردا که ولن نمیشه بیا خب ارزیابی زمان کردید دیگه میگی درس پنجشنبه باز پنجشنبه میمیریم بعد ولن نمیشه بریم میدان انقلاب که درس فلانی بخوام بریم درس فلانی مختصات داره مختصاتش که در مسجد امیره پس ارزیابی زمان و مکان هم می نه که چیزی نیست که آدم بخواد بهش اشاره بکنه. ولی همواره افعال انسان فارغ از زمان و مکان نیست فعل شما در یک زمانی و در یک مکان واقع می شود و این ارزیابی در طول اون مواصل شما شکل می گیره اما خداوند اگر بخواد یه فعلی رو انجام بده از اراد الله اصلا اون فکر نمی کنه. دانش داره روی دانش انجام میده اما دانش ایش او رو به اینجا نبیرسونه چون اصلا علم خداوان تدریجی نیست خداوان نیاز به این ندارد که تصدیق بکنه تا انجام بدد از اراد الله اصلا مشیقیت همش در برحله اراده از همش این تفاوت‌ها ها رو قائل باشید وقتی می گدار به آب نزنید من خلق. او نمیدونه چی ها فریده جاره نمیدونه چی ها فریده تا قیامت میدونه چی ها فریده گاهی اوقات یا موجوداتی نمیدونم دقت کردید خیلی ریز هستن خیلی ریزن حرکت بکنن این در محدوده علم خداست ولی تو لیم بیفهمی این اصلا چه خصوصیتی در این پازل هستی داره تالا باش با واجه شدید در پسترین جا در مثلا پست کنید در حالا اصطلاح اسطلاح فرنش بیتر خلا مثلا ایش چی چیکا نگونین ولی اونم در محدود علم خداست ولی تو اصلا برای اون هیچ ارزشی قائل نیستی ولی آرت به مرا یا بسید الا فی کتاب کتاب مبینه دیده شده نقش داره خیلی دقیقه خب علم خداوند به واسطه آیه که اثبات بشه به واسطه عقلم که ما قبلا اثبات کردیم دیگه ما قبلا دو دلیل آوردیم گفتیم واجب الوجوده به ذاته واجبون من جمیل جهاته اصلا اگر یک, یک جهتش در واقع نقص داشته باشه واجب الوجود نخواهد اینو ما اونجا اثبات کردیم دوم رو که زنیم گفتیم خداوند علت العلل اهمی هستیه و علت باید تمام کمالات معلولش را به نحو و اکمل و اشرف داشته باشد و الا لازم می که مختص فاقد شی بشه علم اگر هست این علم معلول علم الهی است اگر خداوند دارای علم نباشد لازمش این است که چیزی را بدهد در حالی که خودش نداره و این معاله. و این محال، این رو موجود بحث کردیم به این دو داری پس هم به عقل اثبات میشه و هم به چی؟ بله و هم به نقل که آیه قرار الا علم من خلا خدا نمیدونه؟ خدا میدونه حالا کی میدونه میدونه جوری میدونه برخی از آیاتی که بهش رجوع میکنه دانستن و علم خداوند چیزی غیر از ذاتش نیست اما آیا علم الهی فقط به معنای علم ذاتی است که عید ذات است یا نوع دیگری از علم برای خدا اثبات شد برخی از آیات بر این دلالت میکنند که برای خدا در زمان خاصی علمی تحقق یافته ببینید خداوند مجرد خداوندی که مجرده نه زمان داره نه مکان داره درسته گاهی وقتی ما راجع به علم خدا صحبت میکنیم علم خداوند است که فاقد زمان است گاهی وقتی راجع به علم خدا صحبت میکنیم علمیست که همراه زمانه اینی که ما رو وادار میکنه که بگیم گاهی ام صفت ذات خداست گاهی علم صفت علم فعل خداست فعل خدا زمان برداره حالا اینو توضیح میدم اما ذات خداون زمان بردار نیست از ازل بوده است تا ابد خواهد بود و درش هیچ زمانی وجود نداره از ازال همه موجودات در محضرش بودن تا ابدوری همه موجودات که از ازل فعلیت نداشتند که اگه داشتن که حداقلش این بود که هیچ کس دیگه سندش با دیگری تفاوت پیدا نمی‌کرد یک 20 سالش یک 30 سالش یعنی که یک یک 30 سالش یعنی چه سال پیش نبوده ولی از ازل خدا به این موجودی که سی سالش الان بهش علم داره این علم در مرحله ذات خداست توضیح میدیم میار ولی خب نمیفهمیم مینو میدونم قطعا نمیفهمیم چون حالا کسی نفهمیده نهایتا چیزی که بفهمیم این در مرحله صفت خداست این یه توضیحی مثلا شاد یه چیزی بشه ولی اون یکی که هست کسی سر در نمیاره ذات خدا عاطه برای موجودات داره و همون شکلی که گفتم خب برقی از آیات دلالت می کنم بر اینکه برای خدا در زمان خاصی علم وجود تحقق پیدا کرده یعنی قبلا این علم نداشته الان این علمو پیدا کرده البته اگر کسی به معارف اسلامی آگاه نباشد از این گونه آیات که نوعی تشابه در آن هست آیات یا وحکم هستند یا خب معنای تو با نقص دریافت میکنه. هر کسی در ذات عقدس اله نقصی را در واقع بیان کرد این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه زا این در واقع آیه میفرمد و من نمیگه من وقتی چسارت نمی کنم سور آل امران هفته من اینو رو بخوام بکنم. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي هم زَيِّغُونَ هر کسی که در قلبش یک اینهرافی وجود داره یک بیماری وجود داره یده به اون ما تشابه میهند تبعیت میکنه از اون معانی که درش تشابه وجود داره مثل میگه میگهد به اینکه جا عرباک یعنی خود خدا آمد الرحمان علل عرشستوا یعنی خدا بر اون کرسی خودش ایستاد کسی که اینجوری معنا میکنه یعنی مشابه معنای و خب این فی به هم چرا؟ چقدر خدا همه چیزو از پیش پیش بینی کرده. اونایی که هنوز فی قلوب هم زایقونه مشکل دارن. بنده خدا مشکل دارن خودش نمیدونه. ممکن است کسانی که در واقع به هم زایر باشد در ابتدا معانی نادرست و ناسازگار با آیات محکم به اشخاص اینا آقا از معارف بیاد ولی پس از این که خدای متعال مانند مخلوقات نیست که زمانی چیزی را نداند و بعد علم پیدا کنه علم خدا حادث نیست علم خداوند در پی جهل خداوند نیست آنگاه جای این پرسید که معانی این آیات که زمانی برای خدا علم حاصل بشن معناش چیه؟ این باید بفهمیم با مخارج بیایی صحبت بکنیم سه چهار تام آیه از اینجا خب به اندازه یک آیه توضیح میدم چون اینو خدا زمان داره در حالی که خداوند در زمان راه پس اینو باید یه توضیحی براش بدیم یعنی چیه یه زمانی برای خدا یه علم بده شده قبلا اون علم. هر کسی بخواد اینو تصفیتش بکنه سور مقالا که آل ابران هفت بگه وفی هم همزیغانه این بنده خدا مشکل داره حالا آیه رو بشنبید. در سوره مبارکه انفال آیه 65 حکم جنگ. این یکن منکم اشرون الصابرون یقلبون معتن اگر از شما اهل ایمان و مسلمانان تن شکیبا و استوار باشند، بر دو تن چیره میشوند. بیست در مقابل دویست. حد نصاب جنگه حد نصاب جنگه رسول الله چه جنگ رو شروع کن هر وقت 20 نفر اوستوار در زمین خودت پیدا کردی در مقابل دیویست نفرم بود ما مغلوب بکنیم کم منفعت قلیده الافعتن کسی رو حد نصاب شن. بعد در سوره مبارکه انفال آیه 66 خوب عوض بکنه اولش ما گفتیم 20 در مقابل دیویست الان خففا لا انکم همین الان همین الان ما این حکم رو تخفیف دادیم و علمان نفیگم ها و فهمیدیم شما خیلی موجودات پایینی هستیم لذا گفتیم 100 به دیویست یعنی اگه صد نفر اطرافت پیدا کردی که ازدوار بودن اون وردیویس بود جنگ شروع کن یعنی لشکت تقریبه دو برابر هیچ وقت وقتا ما جنگی جنگ, جنگ ابتدایی، بله نبوده شروع کن به این نبود که خب برای هم یکی سمت متونه نه نده طول بیست 23 سال حکومت ختمی مرتبت اشهار شد و نه در چهار سال خورده از حکومت حقه امیر و هر چه هرچه اشغال شد در حکومت اون سنفر است و ما از اون سنفر بری هستیم اون سنفر بلای سر اسلام بودن که ما امروز در مقابل ایرانی ها نمیتوانیم بگیم بابا پیغمبر تصاحب نکرد اون نفر تصاحب کردن ایچه ربطی به پیغمبر ندار. اُصرفر هم برای می دانن وزن ندارن وزنی ندارن هیچ وزن ندارن لاشه الاشه ای هستن رو خوب میدونن نسام میگه علی ابن عبی طالب در لشکر ما بوده قلم دست اوناست دیگه ننوشتن،, ننوشتن ننوشتن ننوشتن هرچی نوشتن به نفع خودشون نوشتن جاری ابن طالب سردا کجا علی ابن ابی طالب سردا پوجا سردار لشکر شما بود تاریخ اینجوری فهمیده نمیشه شامل بارها گفتم روح تاریخ خارج از سنده ولی اگه بخواد به اسناد مراجعه بکنید اون آقای که ناصرالدین رو کش، خب اشتباه کرد ناصرالدین کشت این که بنده خدا دو بار رفته پیاده مشهد موقعی که سی نبود وسط راه پاشو و این عفا بعد اول ما کجا بود کشتنش همه عبدالعظیم بود. بعد شعر میگه راجبه احله به شعری که راجبه از اکبر ناصر الدین گفته اهدی تا حالا تا این روز کسی نگفته زیبا ترین شعری که مسی مسیح عزد شانزاده بزرگبا علی یونالا اکبر هست من ناصر الدینه در از اون کسی نگفته خط به قرآن هم که تو زندگیش داشته که خب چه دین کشتی؟ شاه از این بهدکی خوبی نیست؟ چون روح تاریخ خارج از سنده سندسازی که خیلی میشه که شما به حکم ترکمن چای قضاوت میکنی راجبش برصورت به پیغم به خود و پیغم برمید آجون. در صدر اسلام مسلمانه ها موظف بودن هر 20 نفر در مقابل دیویست نفر بیستن بعد تا این اتفاق باید و از جنگ در واقع فرار نکنه. خب خدا الان همین الان خففا لان کن خدا این در واقع حکم و تکلیف و ازتون برداشت کش کرد و علمان نفیکم ضعیف زعیف الان من فهم شما همین همین کار نیستید یعنی الان من فهمیدم این به خدا الان یا خدا از ازل می دانسته پس این آیه می الان من اینو فهمیدم که صد دفعه در مقابل دیویست همه قرار بگیره حکم به این معنا تقریب پیدا کرد آیه متوجه شده که زمان داره برای علم خدا زمان خوشته خدا همین الاف همین ما ها زعیفی به سقاک با کرد؟ عوض کرد در حال که یه بخش از علم خداست. یه آیه دیگه هم بخونم. حالا نه آسون نه خواهی چیزی نیستش که ما بخوام بذاریم هفته بعد. بخوام هفته بعد تحریلشو بذاریم. سوره مواقع سبه آیه 21 و ما کانه چقدر قشم بیان میکنه. و ما کانه لهو علیه من سلطان آقا شیدان بر شمایش تسلطی نده. تسلط ندارد تا شما در گناه کردن مجبور باشید اگه علی ناس ما در گناه کردن چی بودیم؟ مجبور بودیم وقتی در گناه کردن مجبور بودیم پاسخ به خدا نداشتیم دیگه خیلی عالی میشود دیگه هم گناهر کرده بودیم هم اجبار داشتیم هم دیگه کسی اما سوال نمیکرد میکنم ما کانالهو کانا برای شیطان علیه من سلطان تسلط نیست یعنی شما مجبور به گناه نیستی خدا داره میگه می من چرا شیطان رو خلق کردم شیطان بر شما سلطه نداره بنابراین مجبور نیستید گناه بکنید حکمت خلقت شیطان این است که شما آزموده بشید که کدومتون به آخرت اعتقاد؟ الا لنا علم تا اینکه من بدانم که ما بدانیم من یا امن کی ایمان به آخرت داره یعنی ما تا قبل از که شیطان خرق کنیم این نداشتیم پس چی میگه الا لنا علم میگه که علم پیدا بکنیم من یا امن کی به آخرت ایمان داره در اینجا علم خدا هست ولی علم خدا داره چیه؟ زمان در حالی که علم اگه این ذات خدا باشه در ذات خدا زمان راه وجود چرا؟ چون زمان از مختصات ماده است و خدا مجردون ان الماده ذاتن و فعلن خدا مادی نیست بنابراین ذاتن و فعلن خدا نیاز به زمان نداره و نیاز به مکان نداره زمان و مکان از مختصات موجودات مادی یعنی تو بسای شناخشناسی بطرم میشه و آیه چی میگه؟ تا قبل از این که شیطان خلق بشود ما نمیدونستیم کدومتون ایمانو به خدا دارید یا ندارید حالا که خلقش کردیم الا لنه من یومن مل آخرم تا بدانم بدانین کدوم یکی از شما ها سوره مبارکه محمد آیستیو یک ولنبلوان نکم ما شما را میازمائیم حتی نعلم المجاهدین منکم و ما شما را میازمائیم تا رزمندگان و خیشتنداران و نبلو و اخبارکم و فرادیان از جنگ رو پشتستین یعنی تا قبل از این جنگ اتفاق بیفته ما نمیدونستیم و الان که این جنگ اتفاق افتاد نشستیم بالا این در رفت اون در رفت اون در رفت این صابره این سابره، این صابره خدا زمان داره؟ ها این شما را میازمائیم تا بدانیم چه کسانی اهل جهاد و صبرند و چه کسانی فرار میکنند خب ظاهر آیه داره به ما میگه که علم خدا پس از آزمایشه به دست میان یعنی پس از جنگی به دست میاد یعنی خدا قبل از جهاد علم نداشته که کی اهل صبر کی اهل خب اینه که ما را به این بحث میکشونه وقتی این آیات رو ببینیم که در این آیات زمان برای علم خدا و نتیجه علم خدا ون مطرح میشه ما به این نتیجه که آقا علم گاهی صفت ذات است گاهی صفت فعل گاهی صفت ذات خداوند است گاهی صفت فعل خداوند است اگر فعل خداوند را خوب درک بکنیم انگاه بیفهم که اگر در زمان مطرح شده به خاطر که یه طرف فعل خدا کیه؟ موجودات مادی هستن بسید که زمان مطرح شده به واسط تعلقش به اون موجودات مادی حالا این شکلش چید تا بیان کنم الحمدلاللہ رب العالمين